الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين و والصحبي اجمعين اما بعد بحثی که از دیشب شروع کردیم بحث صرا و معراج رسول الله صلی الله علیه و بود و گفتیم اینکه رسول الله صلی الله علیه و یکی از بزرگترین معجزاتی که دیگر انبیا نداشتند به ایشان داده شد حیوانی به اسم براق که از الاغ بزرگتر و از خاطر کوچکتر مسخر میشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلام هم تا اینکه بروت به رسول الله صلی الله علیه و سلام به بیت المقدس تا به انبیا خداون نماز بکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه حالا بحث رفتن به بیت المقدس بشه چنین میفرمایند که دو تا از فرشتگان خداوند اومدند سقف خانه من را شکافتند باز کردند سقف خانه و در روایت اومده هست که در مسجد الحرام بوده حالا میشه جنب بین, بین اون دسه تراویت که رسول الله صلی الله علیه و سخف خانش رو کفته شده بعد جسدشو یا بردن به کعبه خداوند یا بیت الحرام و در اونجا سینه شو شکافتن و چنین میفرمایند که همراه آنها کاسهی از طلا بود که پر از حکمت بود سینه باز کردن از اون کاسه در قلب من ریختند در سینه من ریختن شاید خیلی ها در ذهنشون اینجینی تصور بشه که حکمت از این چیه چرا سینه را شکافتند و چرا با اون کاسه در سینه‌اش ریختند خداوند چی میخواد به بندگان بگه یکی از مهمترین مسائلی که هست در این روایت‌ها نهفته است اینی که خداوند میخواد بندگانش را امتحان بکنه آیا ایمان به غیبیات دارن یا نه غیبیات چیزهایی که ما از سر و کنهش نمی‌دونیم دوم من این که رسول الله صل الله علیه و بر غیبیات خداوند مطلع بشه آگاه بشه چیزهایی که غیر ممکنه بشریت آن را درک بکنن چیزهایی که غیر ممکنه جسم عادی بشر آن آره را تحمل بکنه چون رسول الله صلی الله علیه و سلم اون که در قرآن اومده ده چنین میفرمویان خدا قل انما انا بشر مثلكم قل انما انا بشر آن محمد بگو من بشری مثل شما هستم لیکن فرقشون ما چیه فرقشون در وحیه یوحا وحی میشه منتخبه انتخاب شده است مصطفی فرقش در اینه لیکن بشری جسمی مثل خودمون داره میشنازه و میبینه فرشته نیست علم غیب هم نداره الان قراره که یک بشر دیگر بشه میخواد بره به آسمانها ها میخواد با پیامبران خداوند ملاقات بکنه میخواد بره به آسمون ها با یک سرعتی که تصور انسان اصلا نمیتونه تصور بکنه ذهن انسان نمیکشه براقی که سوار میشه یک قدم یک جا قدم دیگرش تا دید کار میکنه یک شب میرن به بیت المقدس مسیر هزار و خورد کیلو در یک شب طی کنن حالا این که هیچی به حساب نمیاد. رفتن رسول الله صلی الله علیه و از بیت المقدس تا از مسجد الحرام تا بیت المقدس که چیزی به حساب نمیاد. اگر ما نگاه بکنیم مسیری که رسول الله صلی الله علیه و سلام با آسمانها میرند. آسمانها وقتی که ما میگیم بحث از آسمانها میکنیم یعنی اون چیزی که اصلا غیر ممکنه بشر اونو درک بکنن ما غیر ممکنه خورشید رو درک بکنیم چون خورشید از نزدیک اون رو ندیدیم یا خود خورشید لمسش نکردیم ما ملیون ها کیلومتر از خورشید فاصله داریم خود خورشید ها بار از زمین بزرگتره میتونیم درکش بکنیم نه کهکشان‌هایی هستن که میلیاردها بار از کهکشان خودمون بزرگترند رسول الله صلی الله علیه و تمام میلیاردها ببینید میلیون‌ها اگر هزاران صفرم به یک بذاری این مسیر رسول الله صلی الله علیه و سلام پی میکنان میرن به آسمون ها تا اینکه میرسن به آسمون اول با آدم علیه السلام ملاقات کند و آدمم ترحیب میگوید خوش آمد میگوید به فرزندش به محمد علیه الصلا و السلام مرحبا بابن الصالح عبد الصالح ترحیب میگوید به فرزند صالحش بنده صالح خداوند میره به آسمون بعدی با دیگر پیامبران با موسا و هارون و عیسی علیه السلام و دیگر پیانبران در هر آسمانی با پیانبری از پیانبران خداوند ملاقات کنند. خیلی جانبه که اگر ما دقت بکنیم در همین بحث معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم هر پیانبری وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میبینه خوش آمد میبیند و میگوید مرحباً بالأخ الصالح والعبد الصالح خوش آمد میگویند به کی؟ به برادر صالح و بنده صالح ما مغز خودمون فکر خودمونو باز بکنیم اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم از برادرانش از قیانبران پیشین این چینین ترخیب و خوش آمدی میشنود برادر خود خودشون حساب میکنن برادرم سلام و درود بر برادر صالحم اینجا ما باید از خودمون سوال بکنیم آیا ما هم برادر انبیا خواهیم بود یا نه این سوال ما باید در ذهن خودمون بکنیم بله پیانبران همه برادران و و مؤمنین هم تمام تمام تمامی مؤمنان هم برادر یک دیگرند انم المؤمنون اخوه به درستی که مؤمنان برادرند آچه از های پیشین از ابراهیم و صالح و شعیب و موسی و هارون گرفته تا آدم و دیگر پیامبران بند ولی برادران مؤمنان همه برادرند آیا اینجا سوال گفتم بازم مطرح میکنم آیا ما هم در بهشت اعلی در فردوس اعلی برادر پیامبران خواهیم بود با آنها خواهیم بود یا نه مسیرمون کجا خواهد بود با فرعانیان با نمرود با اونهایی که با دعوت خدا جنگیدند با پیامبران خدا جنگیدند یا اینکه با انبیا خواهیم بود اگر نخواهیم تصمیم گرفتیم که مثل یا همراه پیامبران خدا باشیم، بایدم در زندگیم ن مثل اونها باشیم. ابراهیم و بگیرید یا نوح علیه سنت چقدر باش مبارزه کردم؟ چقدر زحمت کشید برای دین خدامند چقدر برای دین خدا من. برای الله ارزش قائل شد؟ زحمت کشید کشتی رو الله فلان کرد، اینی دعوت هم لیل و نهارا سر و جهارا، شب و روز دعوتشون کردم در پنهان آشکار، شب و روز زحمت کشید برای دین خدا. موسا رو بگی هارون رو بگی عیسی رو بگی تمایا چقدر اذیت شدن خود رسول الله این وقایعیه که داریم در سیرت مصطفی صلی الله علیه و وسلم داریم میخونیم همه اونها زجر و شکنجه دیدن همه اونها بدیها را شنیدند همه اونها مسخره شدن عاقبتشون بل بهش علال آیا ما هم زحمت کشیدیم که برادر آنها باشیم مثل اونها باشیم یا نه این سوالو باید همیشه مهمه از خودش بکنه آیا واقعا من قدر نماز دونستم یا نه خصوصا این نمازی که الان بازم ذکرش خواهشو در درخت اطرا و معراج رسول الله صلی الله وسلم وقتی که میرند به آسمانها بعد از اینکه این, این ها را میشتن میرسن به سدره ها. میرسن به جایی که در آخرین آسمانی که ابراهیم در اونجا حضور داشته و تکیه داده بیت المعمور کعبه فرشتگان در آسمانها. کعبه‌ای که روزانه افتاد هزار فرشته وارد آن میشن و دوباره بر نمیگردن روزانه مینه آن اونجایی که ابراهیم تکیه داده در بالاترین جای بهشت حالا بحث ابراهیم من گفتم ده دقیقه بیشتر صحبت نمیخوام بکنم لکن صحبت صحبت رو خاتمه میدم بحث ابراهیم چرا ابراهیم در آسمان هفتم ابراهیم وقتی که ما در سیرت برق میزنی وقتی که در خود قرآن در قرآن باز بکنیم بیشترین پیامبری که در قرآن ذکر شده یاد شده ابراهیم خلیل الرحمن خلیل الرحمن بالاتر از محبت بالاتر از محبت خلیل بودنه این رتبه را خله رتبه خله را هیچ کسی بران نداشته بله رسول الله داشته لیکن بعد از ابراهیم ما هم در تحیاتمون میگیم اللهم صل علی محمد و علی محمد كما صليت علی ابراهیم همونطور که بر ابراهیم و علی آل ابراهیم ابراهیم و علی ابراهیم طلبات داری دا داریم ابراهیم وقتی که در قرآن ما ورق میذاریم میبینیم که خداوند با لحجه خاصی صحبت میکنه از بندش ابراهیم چی میخواد بگه وقتی ابراهیم میاد میگه انه منیب اوه منیب هميشه به بأ الله برميگه من ومونيبه صاحب عبادت وذكره مونيبه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لله حَنِيفًا ولم يَكُمْ من الْمُشْرِكِينَ إبراهيم بدرسك يك أمته أمتي كامل إمامه أمته كيف كنت مثل إبراهيم أممتًا قانتًا قانتًا, قانتا براي خدا بنده خاص براي خدا بنده. هم هم أول آخرش الله قانتًا لله حنيف ولم یکم من حنیف بوده از تمامی بدیها و شرکیات و گناه ها دور بوده ولم يكن هیچ المشركين از مشرکی نبوده ابراهیم انه كان عبد شكرات بنده شکور خداوند اوصاف ابراهیم خیلی زیاد اگر ما در قرآن برق بزنیم بیشتر از تمامی بیشتر از دیگر پیامبران بحث شده و بیشتر از دیگر پیامبران مدح شده چرا اینجا سوال چرا ابراهیم در اینجا در آخرین در بالاترین جای ها. و چرا در قرآن بیشترین یاد ازش میشه و, به، و بهترین اوصاف ازش یاد میشه چرا؟ چون هیچ وقت از غیر از الله نمی ابراهیم یک تن میاد بطها را خرد میکنه ابراهیم یک تن با یک قوم با یک ملت مبارزه میکند میاد تمامی بطها را خرد میکند اون آلت خرد کننده را دست اون بزرگترین بوت میده تا جایی که ابراهیم را در آتش به خاطر این کارش بله ابراهیم انشین نقل سقامت داشت به خاطر زعفت خداوند از هیچ کس نمی ترسید. ما اگر ابراهیم هایی را داشتیم در امت خودمون دیگه هر کدام هزار لقب بهش می دانیم. یعنی الان من هم من گفتم و بازم میگم اگر ابراهیم علیه السلام یا کسانی مثل ابراهیم در این زمانه باشند بهش تندرو رو میگن بهش خوش میگن بهش فلان میگن هزار لقب بد و نمی دونم فلان بهش می ده. ابراهیم چی بود؟ برای الله دین الله این چنین محکم بود صف نبود شلوول نبود دین خدا بر راسته گرفته بود آنقدر که الله براش مطرح بود دیگران براش مطرح نبودن مهم این بود که الله راضی باشه آیا ما همچنینیم این نه این را دعوتگران خداوند که انشالله بعد هاشونو خواهد اومد ما بحث ابراهیم را قبلا داشتیم لیکن اینجا بحثش در ضمن معراجات بحثی معراجات بحثی معراج بحثای هنوز ادامه داره ما بحث های داریم در خود معراج که سعی میکنیم در همین ده دقیقه که در طول دو هفته داریم شنبه به شنبه و جمعه سعی میکنیم انشاءالله خلاصه از این مطالب عبور بکنیم و در پای و فوایدی که هست در این درس انشاءالله ان شاء الله سعی میکنیم که ذکر بکنیم سبحان الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد و الاله